به چی دیگه؟ سه چی دو, دو یک راژیو ایش دهه بنافش نرات بنافشش بنافش آبیه نرات بنافشش راه راه بنافش آبیه بشه نمیدونم گفته این چارت مرد رویه هاشه مگه مرده هم مرد رویه دارن مرده خدا هم رنگی کنار شب بی مرده است مرغی سیاه آمده از راه دور میخواند از بلندی بام شب شکست سرمست فتح آمده از راه این مرق پر است. در این شکست رنگ از هم گسست رشد هر تنها صدای مرقک بیباک گوش سکوت ساده می آراید با گوشوار پژوار مرغ سیاه آمده از راههای دور بنشست روی بام بلند شب چون سنگ بیتکان لغزنده چشم را بر شکل‌های درهم پندارش خوابی شگفت می‌دهد آزارش گلهای رنگ سرزد از خاکهای شب در جاده های عطر پای نسیم ز رفتار هر دم پی فریبی این مرق قم پرست نقشی کشد به یاری منقار بندی گسسته است خوابی شکسته است رویای سرزمین افسانه شکفتن گلهای رنگ را از یاد برده است بی حرف باید از خم این راه عبور کرد رنگی کنار این شب بیمار مرده است سلام، مثل همیشه من آرش هستم و اینجا رادیو 18 برم. رادیویی که هجده بنفشه و نفشه و از غذا اونقدر خودشو دوست داره که نخواسته باشه مثل کسی دیگه ای باشه. و بنفشی که سوار بر رنگ های روح آدمیزاد میشه و میره به سفر تاریخی جنگ و صلح هایی که بشر هم هنوز خود نفهمید که چرا راهشون انداخت. هر زمان که انسان غلظت هر عملشو بالا ببره اینطوری میشه. اینجا رادیو هجره و نفچه و شما در حال گوش کردن به اپیزود دوم از فصل دومون هستید این اپیزود تقدیم میشه به همه اونایی که از ابتدا انقدر سیاه نبودن سینا جازی میاد که بگه من همینم که میبینی نقندم نشیرینی و ولومو بالا. من همینم که میبینی نقندم نشیرینی حالت رو بعد میکنم میتونی کنارم نشینی خزن خیلیم عرام یهله اوبالیم از شما صح عالی و بند باغالیم به همین بودم نه نخوا که تعمر کنم نخوا کفکار تو رو تب زنجیر کنم. شو تو سرم من همین را دارم نخو که عادت کن من کنی من قسم سخت تو ایبا تو را اگه با دلم خرامی آی با دلم خرامیام قسم سخت تو ایبا تو را اگه با دلم خرامی آی با دلم خرامیام بی بی هر کی تو دنیای رنگیه منم رنگ خودم هم. به غیر از رنگ خودم به دنیام رنگی نمیزنم قیزه ما رنگ خودمونه باشیم نه دنیا رنگی شد دور و برمون پره رنگای خوب پر از دشنگی شد اگه تو رنگ اون چی من رنگ تو همه رنگ میشی دیگه کسی رنگ خودش نیست همه اصاد رنگ زدن میشی از hey, hey. نده به من بزنشو بزرد تا خودم باشم سیاه را می شود نماد بدی گرفت نمیدانند. ولی خب همه رنگ سیاه و تاریکی و ظلمات را نماد بدی می دانند. حالا باید پرسید: آیا کسانی که نماد سیاهی هستند از اول اینطور بودند؟ کمی که, که تحلیل و بررسی کنیم میفهمیم که اتفاقا افراد سیاه تاریخ خیلی خیلی هم سفید بودن خود شما همین هیتلر عزیز را نگاه کن چه گذشته پیش از هیتلر شدن این را گذارند است پس میشود گفت اصولا افراد از ابتدا بد نیستند باید نشست و دید و فهمید که چه شد که اینطور شد چه شد که یک بدون هیچ فاسطه ای روح سفید یک نفر شد سیاه حتی بدون این که مثلا سفید یخشالیش بشود کمی چرک. یک خود سیاه سیاه سیاه. به چی نگاه میکنی تو گوشیت، اینستاگرامم. چی هست؟ یه جایی هست تو اینترنت که مردماتوش اکسوش رو میزن. مثل آلبوم عکس ما بس. شاید. حالا تو چی میبینی؟ این مرده رو؟ این کیه؟ صحابه این عکس دوستته؟ این ریچارد برانسونه. نه، این صحابه این صفحه نیست. صحابه این صفحه عکسشو گذاشته. صحابه شم هم دوست من نیست. ریچارد چیچی چی؟ پس چرا عکسشو گذاشته؟ چرا تو صفحه کسی هستی که دوستت نیست؟ برانسون، چون کاراشو نگاه می‌کنم. تو نقاش خوبیه. جوابمو ندادی. چرا عکس این ریچارد رو گذاشته؟ نمیدونم گفته این ریچارد معل رویایهاشه. مگه مردها هم مرد دارن؟ من چه می‌دونم؟ وشید در نور کوی از از از یک هو، یک نفر می شود قاتل یا مثلا یک دیکتاتور پاشیست مستبد به طور قطع این براینده است از سالهای سال تجارب روحی و جسمیش کسی که می شود متجاوز به طور قطع در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته است البته نشاید حتما ولی حتما زندگیش پر بوده از تجاوز داشتم پرونده بزرگترین قاتلان زنجیره ایران را جالب اینجا بود که همشان بی هیچ استثنایی قربانی تجاوز و خشونت فراوان بودند. ته یکی از این پرونده ها کارشناس روانشناسی پرونده نوشته بود این متهم کاشته و پرورده ای است که همه ماها ها خوانمان هستیم گاهی رفتار کوچکی از ما با یک کودک ممکن است از او یک عقده متحرک بسازد که تا آخرین روز هم همراهش خواهد ماند پس گاهی باید قبل از قضاوت و متهم کردن افراد به خودمان هم نگاه کنیم شاید اگر جای یزید بودیم به جای یک بار بیست بار سر امام حسین را میبریم بود بگذریم از سیاهی هایی که سوی جامعه می بر انسان و از او یک موجود سر سر سیاه و بیره می یک دسته دیگر هم از سیاهی ها هست که یک میلیون بار خطرناکتر از هر سلاح شیمیایی و اتمی در دنیاست. است و آن هم عقایدی است که قلیز شدن به طوری که با اصل اعتقاد بسیار متفاوتند و فرد مورد نظر خود را دائی دار و مجری این به طوری که به خاطر این عقیده به غلظت رسیده سیاه همه چیز و همه کس را غل و, و می کند این اعتقادات هم می تواند از روح سفیده یک آدم یک تاراب سیاه بدون محبت بسازد و هنوز هم دلیلش کشف نشده است بعضی ها برای نغیدند که مکانیزم عمل و اثرش هم کشف نشده است در صورت مشاهده از این فرد تا چند صد میلیون کیلومتر دور شد دیگه چیزی نمیدیدم تموم راه جون کندم تموم راه ترسیدم چرا قجادمون مانه منم با ما همراه هم همراه نمیدونم کجا میرم ولی بارا همراه هم یه وقتذای جاهای آدم چیزی نمیدونی یکی را و ک چل دورا می روبرونونه یه وقتی راض هست ایننیشه میبیی خطر کردی همین شسه رفتننی یه جای خوبه برگردی. چقدر که بیشتر در موردش بخوانیم و فکر کنیم میبینیم انسان همانقدر که در بچگی سفید و بدون هیچ فکر و نظر و سیاهی است در یک جای زندگی‌اش مورد حجمه بالایی از اعتقادات و رفتارها و تفکرات قرار میگیرد که از او یک تابلوی جدید نقاشی می‌کند. تابلوی که هم با یک سطل غیر سیاه میشود ولی نکته اصلی ماجرا اینجاست که آن سفیدی فرشته گونه هم میتواند خوب باشد یا نه و یا اینکه تمامی آن سیاهی بد هستند یا نه پس در نتیجه قدرت انتخاب میان فاکتورهای سیاه و سفید است که نجات بخش آرامش فرد و جامعه اطرافش است انتخابی که باید هرچه زودتر انجام شود وگرنه به طور قط دهان فرد و اطرافش تبدیل به اتوبانی چهار بانده همراه با آسفالت نو تمیز و شیک و صاف و صحیح می شود و باز باید گفت که سالهای سال است که بهترین موضوع برای دانشجویان و استادان دانشكدهها و دانشگاه‌های علوم انسانی همین مسئله روح و فکر آدمی است و شاید اگر نبود نیمی از کتاب خانه های دنیا خالی میشد ای آمده از عالم روحانیت. حیران شده در پنج و چهار و 6 و 7. مینوس ندانید کجا آمده ای. خوش باش ندانی به کجا آمده شما به اپیزود دوم مونولوگ از فصل دوم هجده برنامه حالا چرا مونولوگ به دلایل فنی و غیر فنی هستیم. که خودش قسمت اول از سگانه سیاه سفید خاکستری بود. البته گفته بودن این باید قسمت دوم باشه ولی من وتو کردم و گذاشتمش. اگه با این اپیزود حال کردین و تصمیم دارید که کارای بعدی ما رو هم گوش کنید همین الان. همین الان. به کسی فکر کنید که خیلی دوستش دارید. خب اونو رو در نظر بگیرید. اولاً که همین الان این رو براش بفرستیم که گوش کنه. دوماً که هواستون بهش باشه. هواستون بهش باشه که اگه نباشه یه می میرسه که همه اینا تبدیل میشه به یک کیف پر از خاطره که یک دو سه رمزش و باقی ماجر. هجده بنفش و غیر از فیسبوک و وبسایت سایت و اینستا از کانال تلگرام ما با آیدی رادیو هجده بنفش با هجده عددی. گوش بدید و خیلی مهمتر از اون و خیلی راحت و آسوم یه سری به سایت ویب بزنید قسمت پاکتست ها و باز هم باقی ماجر. در این آهنگ سیاه از امیر ازیمی اونقدی خوب بود که دوباره بعد صحبت ها مراتون پخشش میکنند من آرش بودم و اینجا رادیو هجده بنفشی بود که صدای مهربونش همیشه باقی خواهد موند حتی اگر فقط یه نفرون رو بشنده مرسی از فتانا و ارقوان و مونا و و سارا و خیلی های دیگه مهربون باشیم و شاد و ارقوانی تمام سیاهی رو برونمون دیگه چیزی نمیدیدم تموم راه جون کندم تموم راه ترسیدم چرا قجادم اون منم با ما همراه هم نمیدونم کجا میرم ولی بارا همراه هم یه وقت تو یه جای ادم چیزی نمیدونه یکی داغ و یکی چا تو راه رو یه وقتی راضی ازینی از چه می‌بینی خطر کردی همیشه بس یه جای خوبه برگشتی دنیا نوب معلومه ببین جده تهش چیش و کشق از دور معلومه تو میگی کسی از تو داره دستی تکم میده همیشه لحظه یه آخر یکی راهو نشون میده یکی راهو نشون میده وقتی وقتی راضی از زینی خطر کردی همین یه جای خوبه <میشه> یه <میشه> وقتی <میشه> از <میشه> خطر کردی شغس سر رفتنی یه جای خوبه برگردی